مصنوی معنوی مولوی برنامه هجده در بیان آنکه عاشق دنیا بر مثال عاشق دیوار است که بر او تاب آفتاب زند و جهد و جهاد نکرد تا فهم کند که آن تاب و رونق از دیوار نیست از قرص آفتاب است آشقان کل نه این اشاق جزو ماند از کل آن که شد مشتاق جزو چون که جزو عاشق جزو شود زود معشوقش به کل خود رود ریشگا و بنده غیر آمد و شد کف در ضعیفی در زد و نیست حاکم تا کند تیمار او کار خاجه خود کند یا کار او مسال عرب، ازا زنيت فزن بالهررته و ازا سرقت فسرقت دررته. فزن بلهر رد، این شد مثل فسر قدر بدین شد منتقل، بنده سوی خاجه شد، او ماند زار، بوی گل شد، سوی گل، او ماند خار. او بمانده دور از مطلوب خیش، سعی زای رنج باطل، پای ریش، همچو سیاده که گیرد سایه. سایه کهی گردد ورا سرمایه. سایه مرغ گرفته. مرد سخت. مرغ حیران گشته بر شاخ درخت. کین مدمغ بر که می خندد. عجب ایند باطل. ایند پوسیده سبب. ور تو گوی جوز. پیوسته کل است، خار می خور، خار مقرون گل است. جز یک رو نیست پیوسته کل. ورنه خود باطل بودی، بحث رسول. چون رسولان از پیوستنند، پس چه پیوندندشان؟ چون یک تنند. این سخن پایان ندارد، ای غلام، روز بیگه شد حکایت کن تمام سپردن عرب هدیه را یعنی صبو را به غلامان خلیفه سبوی آب را در پیش داشت تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت گفت این هدیه به سلطان برید سائل شهر را زهاجت وا خرید آب شیرین و سبوی سبز و نو، زاب بارانی که جمع آمد بگاو خنده می آمد نقیبان را از آن لیک پز رفتند آن را همچجان زان که لطف شاه خوب با خبر کرده بود اندر همه ارکان اثر خوی شاهان در رعیت جا کند چرخ اخضر خاک را خزرا کند شه چو حوز دان حشم چون لوله ها آب از لوله روان در گوله ها چون که آب جمله از حوز است پاک هر یکی آب دهد خوش زاقناک آن حوز آب شور است و پلید هر یکی لوله همان آرد پدید زن که پیوست است، هر لولا به حوز خوز کن در معنی این حرف خوز لطف شاهن شاه جان بیوطن چون اثر کرده است اندر کل تن. لطف عقل خوشنهاد نسب چون همه تن را در آرد در ادب عشق شنگ بیقرار بی سکون چون در آرد کل تن را در جنون لطف آب بهر کوچون چون است سنگریزش جمله در و گوهر است هر هنر کستا بدان معروف شد جان شاگردان بدان موصوف شد پیش استاد اصولی هم اصول خاندان شاگرد چسته با حصول پیش استاد فقی آن فق خان فق خاند نه اصول اندر بیان پیش استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. زین همه انواع دانش، روز مرگ، دانش فقر است، ساز راه و برگ حکایت ماجرای نهوی و کشتیبان یکی نهوی به کشتی در نشست رو به با کشتیبان نهاد آن خودپرست است گفت هیچ از نهو خاندی گفت لا گفت نیم عمر تو شد در فنا دل شکسته گشت کشتیبان زتاب لی کندم کرد خاموش از جواب باد کشتی را و گردا بفگند گفت کشتیبان بدان نهوی بلند هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نه nee, ای خوش جواب خوب رو گفت کل عمرت ای نحوی فناست زن که کشتی غرق این گرداب هاست مهو می باید نه نهوی اینجا بدان گر تو مهوی بی خطر در آب ران، آب دریا مردرا بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد، چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بهر اسرارت نهد بر فرق سر، ای که خلقان را تو خر می ای. این زمان چون خر بر این یخ مانده ای، گر تو علامه زمانی در جهان نک فنای این جهان بین و این زمان مرد نحوی را از آن درد دوختیم تا شما را نحو مهو موختیم فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف در کمامد یابی ایار شگرف آن سبوی آب دانشهای ماست وان خلیفه دجله علم خداست ما سبوها پر به دجله میبریم گر نخردانیم خردانیم خود را ما خریم بار عربی بدان معذور بود کوز دجله بی خبر بود و زرود گرز دجله با خبر بودی چما او نبردی آن سبو را جابجا بلکه از دجله اگر واقف بودی آن صبو را بر سر سنگ زدی قبول کردن خلیفه هدیه را و عطا فرمودن با کمال بینیوزی از آن هدیه و از آن صبو چون خلیفه دید و احوال شنید آن صبو را پر ز زر کرد و مزید آن عرب را کرد از فاقه خلاص داد بخشش ها و خلعت های خاص کین سبو پر زر به دست او دهید چون که واگردد سوی دجلش برید. از ره خشک آمد و از سفر از ره دجلش بود نزدیک در چون با کشتی در نشست و دجلدید سجده می کرد از حیاب و می خمید که عجب لطفین شه و را وان عجبتر کو ستود آن آب را چون پذیرفت از منان دریای جود آنچنان نقد دغل را زود زود. کل عالم را سبودان ای پسر. کو از علم خوبی تا بسر. قطره از دجله خوبی اوست. کان نمی گنجد زپوری زیر پوست. گنج <Gang> مخفی بود زپوری چاک کرد. خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود زپوری جوش کرد. خاک را سلطان اطلس پوش کرد. ور بدیدی شاخ از دجله خدا آن سبور را او فنا کردی فنا. آن که دیدندش همیشه بی خودند. بی خدا نه بر سبو سنگی زدند عیز غیرت بر سبو سنگی زده وین سبو زشکست کاملتر شده خم شکسته آب از او ناریخته صد درستی زین شکست انگیخته جوز جوز و خم برقص است و به حال عقل جزوی را نموده این محال نی سبو پیدا در این حالت نه آب خوش ببین و الله و عالم به ثواب چون در معنی زنی بازت کنند پر فکرت زن که شه بازت کنند پر فکرت شد گلالود و گران زان که گل تو را گل شد چونان نان گل است و گوشت کمتر خور از این تا نمانی همچو گل اندر زمین چون گرسنه می شوی سگ می شوی تند و بد پیوند و بد میشوی. می شوی چون شدی تو سیر مردار شدی. بی خبر بی پا چو دیوار شدی. پس دم مردار و دیگردم سگی. چون کنی در راه شیران خوشدگی. آلت اشکار خود جسگ مدان. کم ترک انداز سگ را استخوان، زان سگ چون سیر شد سرکش شود کایسوی سیدو و شکار خوش دود آن عرب را بی میکشید، می کشید تا بدان درگاه و آن دولت رسید در حکایت گفتیم احسان شاه در حق آن بی بیپنا هرچی گوید مرد عاشق بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق گر بگوید فق فق همه بوی فق از آن خوش دمدما. گر بگوید کفر دارد بوی دین بر بشک گوید شکش گردد یقین کفی کز بحر صدق خواست است اصل صاف آن فر را آراسته است. آن کفش را صافی و محقوق دان، همچون دشنام لب معشوق دان. گشته آن دشنام نامطلوب او خوش ز بحر عارض محبوب او. گر بگوید کژ نماید راستی ای کجی که راست را آراستی از شکر گر شکل نان میپزی طعم قند آید نان چون میمزی بر بیابد مؤمن زرین وسن کی حلت آن را برای هر شمن بلکه گیرد اندر آتش افگند. صورت آریتش را بشکند. تا نماند بر زهب شکل وسن سن. زن صورت مانع است و راه زن. ذات زرش، ذات ربانیت است. نقش بت بر نقد زر، آریت است، بحرکه که تو گلیم را مسوز و صداع هر هرمگست مغز مغزار روز بدپرستی چون بمانی در سوار صورتش بگذار و در معنی نگر مرد حجی، همراه حاجی طلب خواه هندو، خواه ترک و یا عرب من گرندر نقش و اندر رنگ او بنگر اندر عزم و در آهنگ او گر هست او هم آهنگ تو است تو سپیدش خان که همرنگ تو است این حکایت گفته شد زیر و زبر همچو فکر آشقان بی پا و سر سر ندارد چون ززل بوده است پیش پا ندارد با ابد بوده است خیش بلکه چون آب است هر قطره از هم سر است و پا و هم به هر دوان هاش لله این حکایت نیست هین نقد حال ما و توست این خوش ببین زان که صوفی با کر و با فر بود هرچه آن مازیست لایس کر بود هم عرب ما هم سبو ما هم ملک جمل ما یو افک و انهو من افک اقل را شودان و زن را نفس و طمع این دو ظلمانی و منکر عقل شم بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست زن کل را گونه گونه جوزو هاست جوزو کل نی جوزو نسبت نسبت کل نی چوبوی گل که باشد جزو گل لطف سبزه جزو لطف گل بود بانگ قمری جزو آن بلبل گر شوم مشغول اشکال و جواب تشنگان را کی توانم داد آب گر تو اشکالی به کلی و هرج صبر کن از صبر و مفتاح الفرج احتماکن کن احتما زندیشه فکر شیر و گور و دلها بیشهها ها بر دواها سرور است زانکه که خاریدن فزونی گر است احتما اصل دوا آمد یقین احتما کن قوت جان را ببین قابل این گفته ها شو گوشوار تا که از زر سازمت من گوشوار هلقدر گوش مه زرگر شوی تا به ماه و تا سریا بر شوی اولا بشنو که خلق مختلف مختلف جانند از یا تا الف در حروف مختلف شور و شکی است گرچه از یک رو ز سر تا پا یکی است از یکی رو زد و یک رو متحد از یکی رو حسل و از یک رو جد پس قیامت روز عرض اکبر است. عرض او خواهد که بازی و فر است. هر که چون هندوی سودایی است، روز عرضش نوبت رسوایی است. چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شبه همچون نقاب. برگ یک گل چون ندارد خار او شد بهاران دشمن اسرار او وآنکه سرتاپا گل است و سوسن است پس بهار او را دو چشم روشن است خار بیمانی خزان خواهد خزان تا زند پهلوی خود با گلستان تا بپوشد حسن آن و ننگ این، تا نبینی رنگ آن و رنگ این. پس خزان او را بهار است و حیات، یک نمایت سنگ و یا قوت زکات. باغبان هم آن را در خزان، لیک دید یک به دید جهان، خود جهان آن یک کس است او ابله است. هر ستاره بر فلک جزو مه هست پس همه گویند هر نقش و نگار مجده مجده نک همه آید بهار تابوت تابان شکوفه چونزره کی کنند آن میوه ها پیدا گره چون شکوفه ریخت میوه سر کند. چون که تن بشکاست جان سربرزند میوه معنی و شکوفه صورتش آن شکوفه مجد میوه نعمتش چون شکوفه ریخت میوه شد پدید چونکه آن کم شد شد این اندر مزید تا که نان نشکست قوت کی دهد ناشکسته خوشه کی می دهد تا حلیله نشکند با ادویه کی شود خود صحت افزا ادویه برنامههای مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.